بخش دوم زندگی کردن با برتری خفیف فصل دهم ده دو مسیر زندگی من راهی را در پیش گرفتم که رهگذر کمتری داشت و همه تفاوت‌ها در همین بود. رابرت فراست راه نرفته ساعت شش صبح زنگ ساعت به صدا در میآید. بدون هیچ هیچگونه فکری دستتان را دراز می کنید و دگمه تأخیر را می زنید. یک وقفه چند دقیقه ای و سختی یک پایتان را از زیر پتو بیرون می آورید. دینگ! صدای زنگ ساعت بلند می شود. یک چشمتان را باز می کنید. هوا هنوز هم تاریک است. حالا با یک انتخاب روبرو هستید. می توانید بیدار شوید، چراغ را روشن کنید، فکرتان را به کار بیاندازید و قشر خاکستری مغزتان را ترغیب کنید تا به جستجوی سه چیز جدیدی بپردازد که به خاطرشان سپاسگزار هستید و سپس آنها را یادداشت کنید. آنگاه می توانید ماشین بدنتان را روشن کنید، خودتان را از رختخواب بیرون بکشید، بلند شوید و 20 حرکت دراز نشست انجام دهید که به خودتان قول دادید هر روز انجام می دهید. وقتی این تصمیم را گرفتید آیا منظورتان این بود که حتی روزهای تعطیل هم انجامش میدهید؟ خمیازه میکشید و میگویید امروز تعطیل است. یا اینکه میتوانید پتو را روی خودتان بکشید و کمی بیشتر بخوابید. نه، این کار تنبلی است. به جای آن تصمیم میگیرید تلویزیون را روشن کنید و اخبار را دنبال کنید. اینکه سرانجام آن رسوایی سیاسی چه شد یا جستجوی پلیس برای پیدا کردن قاتل سریالی هفته به کجا رسید؟ کنترل تلویزیون را می دارید شما همین حالا مسیری را مشخص کردید که زندگیتان طی خواهد کرد شکایت می کنید که بی خیال کمی به من استراحت بده صبح روز تعطیل است فقط چند دقیقه از یک صبح روز تعطیل تلف شده است فکر نمی کنم این تصمیم نتایج و پیامدهای مهمی داشته باشد اما مطمئن باشید که چنین نتایجی را در بر دارد عالی بودن همیشه در لحظه تصمیم گیری اتفاق میافتد و همچنین تقدیر شما هدیه آن مرد ثروتمند به پسرانش و خردمندی ناشی از برتری خفیف در انتخاب‌های کوچک و پیش پا افتادهای نمایان می‌شوند که هر روز انجامشان می‌دهیم نه در برخی لحظه‌های بزرگ و دراماتیک زندگی همین لحظه‌های خصوصی و پنهان روزانه هستند که تعیین می‌کنند زندگی تان چه مسیری را طی خواهد کرد موقعیتی که در زندگی به آن میرسید به این ربطی ندارد که آدم خوبی هستید یا بد یا اینکه استحقاقش را دارید یا ندارید و همچنین به سرنوشت یا وضعیت شما نیز ربطی ندارد بلکه با انتخابهای شما در زندگیتان تعیین میشود مخصوصا انتخابهای کوچکتان تان میدانم که اینطور به نظر نمیرسد این گونه به نظر میرسد که شما فقط انتخاب میکنید که ساعت بعدتان را چگونه بگذرانید؟ نه چهل سال آیندهتان را اما در واقع شما انتخاب می کنید که چه سال آینده تان را چگونه سپری کنید. دلیل دشوار بودن درک این موضوع این است که شما گمان می کنید اقدامات تان در یک خط ساده مستقیم حرکت می کنند. شما یا آن مورد قدردانی را یادداشت کنید یا اینکه آن ده دقیقه اضافی زمان تأخیر را به انجام دادن 20 حرکت دراز نشست یا دیدن اخبار بد اختصاص می دهید. هر یک از این راه ها را که انتخاب کنید، در انتهای آن ده دقیقه به نقطه یکسانی سانی می رسید. درست است؟ نه، به هیچ وجه اینطور نیست. شما به نقاط متفاوتی می رسید. چرا که اقدامات شما در یک مسیر مستقیم حرکت نمی کنند، مسیر آنها مانند یک منحنی خمیده است. همه چیز خمیده است. روزگاری مردم جهان معتقد بودند که زمین در مرکز جهان هستی ساکن و بی حرکت است اما برخی از افراد با سرسختانه از پذیرفتن چیزی که برای دیگران کاملا آشکار و بدیهی بود امتناع کردند به دلیل وجود کپرنیک، گالیله و تعداد انگشت شماری از افراد دیگر که زندگیشان را به خطر انداختند و مسیری را انتخاب کردند که راهگذر کمتری داشت سرانجام باقی جهان به چیزی پی بردند که امروز در قرن بیست و یکم برای همه انسانها واضح و بدیهی است. زمین به دور خورشید می چرخد. در صد سال اخیر ما کشف کرده ایم که فضا خمیده است. با این حال پذیرش و درک این موضوع هنوز هم برای بسیاری از مردم دشوار به نظر می رسد. حقیقت این است که در کائنات همه چیز خمیده است. هیچ خط مستقیم حقیقی وجود ندارد. همه چیز دائما در حال تغییر است. از جمله زندگی خودتان. شما در سفری هستید که مسیر زندگی نامیده می شود و این مسیر مستقیم نیست بلکه یک مسیر منهنی شکل و خمیده است. هنگامی که در مسیرتان حرکت می کنید همیشه و در هر لحظه از هر روز مسیر شما به طرف بالا یا پایین انهنا می آبد. ممکن است اینگونه به نظر برسد که امروزتان بسیار شبیه دیروز است اما اینطور نیست. هر روز متفاوت با دیروز است. ظاهر می تواند فریبنده باشد در حقیقت ظاهر تقریبا همیشه فریبنده است گاهی اوقات به نظر می رسد همه چیز ثابت و یک نواخت است این نوعی وهم و خیال باطل است در زندگی هیچ چیزی نیست که در یک وضعیت ثابت باقی بماند هیچ خط مستقیمی وجود ندارد همه چیز خمیده است اگر پیشرفت نمی کنید پس در حال پس رفت هستید هندسه زمان خیلی از مردم زمان را دشمن خودشان می‌دانند. آنها می‌کوشند تا از گذر زمان اجتناب کنند و تلاش می‌کنند تا همین حالا به نتایج مورد نظرشان دست یابند. این انتخابی است که بر مبنای نوعی فلسفه است. افراد موفق دریافتند که زمان دوست آنهاست. در هر انتخابی که می‌کنند و هر اقدامی که انجام می‌دهند، همیشه زمان را در نظر دارند. زمان دوست و پشتیبان آنهاست؟ این نیز انتخابی است که بر اساس نوعی فلسفه است. زمان یا دوست شما خواهد بود یا دشمن شما؟ یا شما را بالا می برد یا شما را پایین میآورد؟ زندگی همچون برج خمیده ای است که زمان بنای آن و انتخاب معمار آن است. چرا انسانها پرواز نمی کنند؟ آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چرا انسانها نمیتوانند نمی توانند پرواز کنند؟ نیروی غالب بر روی کره زمین جاذبه است و جاذبه همیشه شما را پایین می کشد. در سال 1890، بیشاپ میلتون رایت، مؤسس دانشگاه هانتینگ دون ایندیانا، در خطابه ای درباره این حقیقت بدیهی صحبت کرد که اگر خدا می خواست بشر پرواز کند، به او بال میداد. اما به نظر می رسد برخی از افراد نمی توانند حقایق بدیهی را در همان لحظه اول بپذیرند. مثلا سیزده سال بعد پسران بیشاپ رایت اولین ماشین پرنده را ساختند و با آن پرواز کردند. نام آنها ویلبر و اورویل بود. بر اساس پژوهش های علوم اجتماعی در کودکی و تا پنج سالگی قبل از اینکه حتی به کلاس اول بروید حدود چهل هزار بار کلمه نه را می شنوید. حدث میزنید چند بار کلمه بله را شنیده باشید. در حدود پنج هزار بار. تعداد نها هشت برابر تعداد بله هاست. نیروی که شما را پایین میکشد هشت برابر نیرویی است که شما را بالا میبرد. نیروی مخالف هشت برابر اشتیاق شما برای اوج گرفتن است. اون کارو نکن، دست و پاچولفتی نباش، به اون دست نزن، داغه، با غریبه ها حرف نزن، نه، نمیتونی بیشتر از این بیدار بمونی، نه، وقتی که بزرگتر شدی، نه، الان وقت نداریم، نه، نه، نه البته بسیاری از این نه دلایل خوبی دارند و مانند شعار نیروی پلیس هدفشان فقط برای محافظت و خدمت است. بنابراین من از نهها انتقاد نمیکنم اما بله ها کجا هستند؟ جری ویلسون در کتاب برجستهاش به نام بازاریابی شفاهی تشریح می‌کند که چگونه استراتژی خدمات مشتریان استثنایی‌اش را بر روی آمار مهمی بنا کرد که در تحقیقات بازاریابیش به آن پی برده بود. مشتریان عادی درباره تجربه مثبتی که در مورد یک کسب و کار یا محصول داشتهاند با سه نفر صحبت خواهند کرد. اما درباره یک تجربه منفی با سی و سه نفر صحبت می‌کنند. یازده بار تکرار داستان تجربه بعد در مقابل یک بار تعریف داستان مثبت. یازده دلیل برای این که یک ایده اثربخش نخواهد بود در مقابل یک دلیل که میگوید آن ایده کارساز خواهد شد. همانطور که قبلا گفتم از هر بیست نفر فقط یک نفر به اهداف و رؤیاهایش در زندگی دست پیدا میکند کند. صرف نظر از اینکه که کدام حوزه از زندگی یا کار صحبت می کنیم میانگین میزان موفقیت بیش از پنج درصد نیست. چرا اینگونه است؟ وقتی که ما با چهل هزار نه در مقابل پنج هزار بله و سی و سه نظر منفی در مقابل سه نظر مثبت بزرگ می شویم، آیا جایی تعجب دارد که چرا 95 پنج درصد از ما شکست می خوریم؟ آیا جایی تعجب دارد که چرا بیشتر انسانها پرواز نمی کنند؟ اگر شما هم یکی از آن افراد نادر و پنج درصد استثنایی هستید، خب در این صورت برایتان هم خبرهای خوب دارم و هم خبرهای بد. خبر خوب این است که شما همین حالا به مقدار بسیار زیادی در مسیر رسیدن به موفقیت هستید. خبر بد این است که آن پنج درصد جلوی شما را می‌گیرند، مانعتان می‌شوند، دائماً ناامیدتان و ناامیدتان می‌کنند و تمام تلاششان را می‌کنند تا شما را پایین بکشند. چرا؟ زیرا اگر شما موفق شوید، موفقیت شما این حقیقت را تقویت می‌کند که آنها در جایگاه دلخواهشان نیستند. آنها به طور غریزی می‌دانند که فقط دو راه وجود دارد که ساختمان آنها بلندترین ساختمان شهر باشد. ساختن یک ساختمان بزرگتر یا نابود کردن همه ساختمان‌های دیگر. از آنجایی که احتمال ساختن ساختمان بزرگتر توسط آنها خیلی کم است و از آنجایی که بسیار طول میکشد تا هر گونه نتیجه را ببینند و همچنین از آنجایی که آنها اصلا از وجود برتری خفیف آگاهی ندارند، مسیری را انتخاب میکنند که راحت تر است و وارد کار تخریب میشوند. شما میتوانید از برتری خفیف استفاده کنید تا از نیروی پایین کشنده زندگی رها شوید و تبدیل به بهترین کسی شوید که میتوانید باشید. یا اینکه برتری خفیف شما را پایین می کشد، پایین نگه می دارد و سرانجام شما را از دور خارج می کند. کاملا به خودتان بستگی دارد. برای اینکه اوضاع تغییر کند شما باید تغییر کنید. برای اینکه اوضاع بهتر شود شما باید بهتر شوید. انجام دادن این کار آسان است اما انجام ندادنش نیز آسان است ایبجویی یا مسئولیت پذیری. اگر می‌خواهید بدانید در حال حاضر بر روی منحنی موفقیت هستید یا منحنی شکست یا اگر می‌خواهید دیگران را ارزیابی کنید که بر روی کدام منحنی هستند یک روش ساده برای انجام دادن این کار وجود دارد در هر منحنی یک نگرش و حالت فکری خاص به صورت قدرتمندی بر شخص غالب است عیب جویی کردن حالت فکری غالب در افرادی است که بر روی منحنی شکست هستند حالت فکری غالب در افرادی که بر روی منهنی موفقیت هستند مسئولیت پذیری است. افرادی که بر روی منهنی موفقیت قرار دارند در زندگیشان مسئولیت پذیر هستند. آنها مسئولیت کامل کسی که هستند جایی که هستند و هر چیزی را که برایشان اتفاق میافتد میپذیرند. مسئولیت پذیری به شما آزادی و رهایی میبخشد در حقیقت شاید رهایی بخشترین چیزی است که در جهان وجود دارد. حتی وقتی که به شما آسیب میرساند و ناعادلانه به نظر می رسد. وقتی که مسئولیت را قبول نمی کنید و از دیگران شرایط، تقدیر یا شانس عیبجوی می کنید و آنها را سرزنش می کنید، قدرتتان را به دیگران واگذار می کنید. اما وقتی که مسئولیت کامل را می‌پذیرید، حتی وقتی که اشتباه از دیگران است یا شرایط واقعا ناعادلانه است، افسار زندگیتان را در دستان خودتان نگه می‌دارید. اتفاقات منفی و ناگوار برای همه ما رخ میدهند، بسیاری از آنها کاملا یا تا حدود زیادی خارج از کنترل ما هستند. اینکه چه واکنشی نشان دهیم یا آن شرایط و موقعیت را چگونه ارزیابی می کنیم، تفاوت بین موفقیت و شکست را به وجود می آورد و این موضوع کاملا در کنترل ماست. جان باروز طبیعتگرای امریکایی این موضوع را اینگونه توضیح می دهد. انسان ممکن است بارها شکست بخورد اما شکست خورده نیست مگر تا زمانی که شروع به عیب جویی از دیگران و سرزنش آنها کند از چیزی که خودتان اجازه وقوعش را داده اید شکایت نکنید 5 درصد ساکن منهنی موفقیت میدانند دانند که هیچ عذر و بهانهای وجود ندارد آنها این حقیقت را درک کرده اند که هیچ کسی نمیتواند آنها را به موفقیت برساند و هیچ کسی نیز این کار را برایشان انجام نمیدهد. آنها بر مبنای این حقیقت زندگی می کنند که اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد کاملا به خودم بستگی دارد. آنها استانداردهای خودشان را دارند و استانداردهای آنها بالاست. آنها پی بردهاند که محدودیت ذهنی و خود تحمیل شده است. آنها میدانند اینکه چه اتفاقی برایشان رخ میدهد اهمیتی ندارد بلکه نحوه واکنش به آن اتفاق است که تفاوت بین موفقیت و شکستشان را به وجود می آورد. آنها از وجود برتری خفیف آگاه هستند و نحوه عمل کرده آن را می دانند. افرادی که بر روی منحنی شکست به سر می برند، استاد عیبجوی و سرزنش هستند. آنها هر کسی و هر چیزی را سرزنش می کنند. آنها اقتصاد، دولت، بحران نفت، آب و هوا، همسایه ها، ثروتمندان، فقرا، جوانها، پیرها، کودکانشان، والدینشان، رئیسشان، همکارانشان، کارمندانشان و حتی خود زندگی را سرزنش می‌کنند. ساکنان منحنی شکست خودشان را قربانیان زندگی می‌دانند و اعتقاد دارند که به آنها ظلم شده است. مردی را می شناختم که فلسفه‌اش این بود: زندگی یک شوخی ناخوشایند است که جای بین تولد و مرگ اتفاق میافتد. فکر می کنید او در کدام بخش منحنی زندگی می کند و زندگی او به کجا منتهی میشود؟ آیا میتوانید تصور کنید این استدلال که زندگی یک شوخی ناخوشایند است وقتی که با نیروی زمان که همچون سنبل آبی است تقویت شود چه نتایجی خلق می کند؟ احتمالا این عبارت را شنیدید که مراقب باشید چه آرزویی می‌کنید ممکن است به آن برسید این عبارت درباره آرزو کردن نیست بلکه در این باره است که مراقب افکارتان باشید زیرا چیزی که به آن فکر می‌کنید وقتی که با اقدامات و زمان تکثیر شود همان چیزی را به وجود می‌آورد که به آن دست پیدا می‌کنید از چیزی که خودتان اجازه وقوعش را داده اید شکایت نکنید افرادی که بر روی منحنی شکست قرار دارند به برتری خفیف توجهی نمی کنند. ورنر ارهارد نویسنده و مربی پیشرفت شخصی تعریفی از مسئولیت پذیری ارائه کرده است که در اینجا بسیار مربوط و مناسب به نظر میرسد. آن تعریف این است. مسئولیت پذیری یعنی خود را علت وقوع همه اتفاقها دانستن. این مفهومی است که انسانها باید بر اساس آن زندگی کنند. مسئولیت پذیری یک وظیفه، حسن، عیب، سرزنش، اعتبار، شرم یا گناه نیست. همه اینها شامل قضاوت و ارزیابی خوب و بد، درست و غلط و بهتر و بدتر هستند. اینها مسئولیت پذیری نیستند. مسئولیت پذیری با تمایل برای رسیدگی کردن به یک موقعیت یا مشکل شروع می شود. با این دیدگاه که منشه آنچه هستید، آنچه انجام می دهید و آنچه دارید خودتان هستید. البته این موضوع خیلی درست یا حتی واقعی نیست که خودمان را علت وقوع همه اتفاقها بدانیم اما این طرز فکر بسیار قدرت بخش است با قبول اینکه خودتان علت اتفاقات هستید چیزهایی که برایتان اتفاق می‌افتند از برایتان اتفاق افتاده به در نتیجه کار خودتان برایتان اتفاق افتاده تغییر میکند. افرادی که در نیمه موفقیت منهنی برتری خفیف حضور دارند، خودشان علت چیزهایی هستند که در زندگیشان رخ می دهد. آنها از تمام نیروهایی که آنها را به این نقطه رسانده مانند خدا، والدین، معلمان، دوران کودکی، شرایط و غیره، با قدردانی و سپاسگذاری و بدون سرزنش و عیبجویی یاد می کنند. آنها خودشان را علت اتفاقهایی می دانند که بعداً در زندگیشان رخ می دهد. آیا شما خود علت اتفاقات زندگیتان هستید؟ افرادی که بر روی منحنی موفقیت هستند، مسئولیت کامل تمامی انتخاب‌هایشان در زندگی و کار را بر عهده می‌گیرند. آیا شما هم اینطور هستید؟ پذیرش مسئولیت کارهایمان کار آسانی است و زیر بار نرفتن نیز آسان است. اگر شما همین حالا مسئولیت کامل افکار، اقدامات، شرایط و رویدادها را بر عهده نگیرید آیا همین امروز شما را از بین می نه اما؟ اما آن اشتباهات ساده در تصمیم ها که در طول زمان مرکب می شوند کاملا و قطعا شما را نابود می کنند. افراد موفق کارهای را انجام می دهند که افراد ناموفق تمایلی به انجام دادنشان ندارند آنها مسئولیت کامل نحوه تاثیرگذاری برتری خفیف در زندگیشان را بر عهده میگیرند افراد ناموفق انتقاد و گله می کنند که برتری خفیف در زندگی آنها موثر نیست افراد موفق میدانند دانند که افراد ناموفق زیر بار پذیرش مسئولیت کارهایشان نمیروند.